بخش هشتم محمدجانی جانی جوان ابراهیم روامی سیه خورداده هشتاد گیجم گیج این مرد کیست؟ من کیستم؟ آیا او صادق از من نبوده و نیست؟ آیا هنیف من تفلی که جز دردی کشنده که بند بند بدنم را از هم جدا می کرد از او یاد ندارم همین جوان بلند قد، خندان، شوختب و لاغید است آیا من این سالها به دنبال این جوان بودم؟ آیا او بهانهی برای زندگی و جستجو و, و ادامه دادن بود؟ چرا هنیف من همین صالح نیست جوانی که آرزوی داشتنش را داشتم؟ چرا باید اسمایل هنیف من باشد؟ چرا در هم ریخته کلاف بسرد در گمم به تقاضای حاج صادق روامی چه جوابی بدهم این مرد مقتدر و ثروتمند چرا مرا انتخاب کرده است آیا دلبستگی صالح به من برای طرح این تقاضا کافی است چرا راحت به آنچه میخواستم دست یافتم آیا همین راحت دست یافتم به واقعیت است که چنین آشفتم کرده است مگر نه اینکه ما به آنچه سخت به دست می دل میبندیم. با صالح تره دوستی ریختم تا بتوانم ردی از روحامی و هنیف به دست بیاورم. و اکنون که در همین ابتدای راه همه چیز را دانستم، چه باید بکنم؟ آیا همه چیز را دانستم؟ از کجا معلوم آنچه حاج صادق میگوید درست باشد؟ درست است؟ او همه ماجرای من و روحامی را می دانست. چه شوخی دردناکی، چه تقدیر مهم و پوچی، چه بازی بیقایده ای. تیره هشتاد صحبت کردن از او پدر را به من نزدیک کرده است. حالا هر دو مثل بچه ها چونان زده از او صحبت می کنیم که انگار رازی بزرگ را با هم تقسیم کرده ایم. پدر میگوید اگر جوابش مثبت باشد تعطیلات تابستان را اروپا میگذرانیم. این اولین بار است از داشتن پدری ثروتمند احساس خوشنودی میکنم دیروز بعد از دو هفته با او تلفنی صحبت کردم صدایش مرتعش و لرزان بود به نظرم او هم هیجان زده بود دلم میخواست درباره تقاضای پدر با او صحبت کنم اما نتوانستم از امتحاناتم پرسید و از برنامه تابستانم وقتی گفتم هنوز برای تعطیلات تابستان برنامه دیزی نکردم سکوت کرد انگار او هم به همان چیزی فکر می‌کرد که من به آن می‌اندیشیدم احساس رعیتی را دارم که خاند زنش را به سر پرده خود خوانده است لبریز از خشم و حسادتم احساس مردی را دارم که در حضور همگان تحقیق شده است از اینکه به او پرخاش نکردم و جلوش نیست احساس سرشکستگی می کنم. مثل مردی که زنش را با دیگری دیده ولی دنبر نیاورده است. از درون فرو ریختم. بعد از سالها یک بار دیگر زیر دست و پای هایت صادق له و لورده شدم. گفت می توانی با او حرف بزنی. می توانی بگوی من کی هستم. وقتی می گفت می توانی من با تمام وجود احساس می کردم نمی توانم. و حتم او هم می دانست نمی توانم وگرنه یعنی آن حرف را نمی زد. گفت که اگر این وسلت صورت بگیرد هیچ چیز از گذشته به اکنون آورده نمی شود باید گذشته را دفن کنیم فراموش فراموشی مطلق گفت که همه چیز را به گل گفته است و او میداند که اسمایل فرزندش است و او دایی اسمایل است. احساس می کنم. یک امور داده امروز زنگ زد. پرسید می توانم شام با او باشم. نمیدانستم چه جوابی بدهم. یک ماه به تقاضای او فکر کردم. اما هنوز تصمیمی نگرفتم. روزهای اول مثل یک ماده شیر سخت خورده چنگالهایم را اول به او و بعد به خودم نشان دادم. حالا بیشتر از اینکه با او جنگ داشته باشم، با خودم جنگ دارم. فکر می کنم با گفتن بله به خودم، آرمانهایم، هایم، و باورهایم خیانت کردم. از طرفی میدانم با گفتن بله از بی سر و سامانی نجات می رودم. به حنیف و ابراهیم نزدیک می‌شوم و چی؟ آیا می‌خواهم از ابراهیم انتقام بگیرم؟ آیا میخواهم حنیف را از چنگ او بیرون بیاورم؟ آیا صالح نمی‌تواند جای خالی حنیف را پر کند؟ اگر جای خالی وجود داشته باشد که دارد، جای خالی یک مرد است. آیا حاج صادق می‌تواند مردی باشد که در این چند سال اخیر منتظرش بودم؟ مردی در آستانه شست سالگی با ثروتی کلان و پسری جوان آیا او مثل پسر ویش ابراهیم نیست ؟ باشد اصلا خود ابراهیم باشد. نه ابراهیم نه از او بدم میآید بدت میآید؟ واقعا بدت میآید؟ نمیدانم نمیدانم تیزده مرداد 80. پدر رمان شوخی اثر میلان کنترا را روی میز میگذارد و میگوید او برایت فرستاده میلی به حرف زدن درباره ماجره امروز ندارد برخلاف دیدار قبلیش دمغ و کسل است نمیدانم چه اتفاقی افتاده سعی میکنم چیزی از او در بیاورم پافشاری هایم راه به جایی نمیبرد یک مسکن قوی می‌خورد و به اتاق خوابش می‌رود. کلافم. احساس می‌کنم چیزی در حال فروپاشیدن است است. هاست او را در چنین حالتی ندیدم دلم می‌خواهد به خانم محمدجانی تلفن کنم و از او ماجرا را بپرسم. اما نمی‌دانم چرا شماره خانه امو ابراهیم را می‌گیرم و با او صحبت می‌کنم. امو ابراهیم یک بند شعر می‌خواند و آه می‌کشد. به نظرم حال او از همه خرابتر است. انتظار دارم از ماجرای پدر بپرسد. اما به جای آن از اسماعیل میگوید که با اده از دوستانش به شمال رفته است. و میپرسد چه چیزی در این هستی ارزش پایبندی دارد. به نظرم از اسماعیل دلخور است. میگویم تا آنجا که من میدانم هیچ چیز ولی نمیگذارد جمله ام را تمام کنم. بشته سر هم تکرار میکند هیچ چیز. هیچ چیز و گوشی را میگذرد 28 مرداد 1380 امروز 28 مرداد است این تنها روزی است که با آن حساس هستم سالهاست هر سال در این روز او را به یاد میآورم. گویی این روز روز میعاد من و اوست مرزی از یک ماه پیش در تدارک که برگزاری جشن تولد اسماعیل است. راستی اگر اسماعیل می دانست بیست و مرداد به دنیا آمده است، نه اول شهری ورچه کار می کرد؟ و اگر گل می دانست پسر او نه در بیست و مرداد که در اول شهری ور جشن تولد می گیرد، چه می گفت؟ آن روز، آن روز دور، بیست سال پیش، وقتی فهمید اسماعیل در روز بیست و هشتم مرداد متولد شده است، آن را به فال نیک گرفت و گفت تولدش در روزی که ملتی می میرد معنایی خاص دارد. آن روزها باور داشت که پسرش یک مصلح اجتماعی، یک رهبر فرزانه خواهد شد که جهان را نجات خواهد داد. نمیدانست این نشانه ها را میسازیم تا هستی را قابل تحمل کنیم. تا دردهای من را توجیه کنیم حتما هایت صادق هم به این نشانه واقف بود که در شناسنامه جدید تاریخ تولد اسماعیل را اول شهری بر ثبت کرد لابد برای من هم این روز نشانه ی است است که بیست سال آن را در ذهنم ثبت کردم و هر سال در این روز به قبار روبی گذشته رفتم و آن ساعتها و دقایقی را که پدر می شدم و او درد می کشید یا بیهوش بود، روشن و درخشان دیدم. دلم میخواهد شماره تلفنش را از صالح بگیرم. به او زنگ بزنم و در باره این روز با او حرف بزنم. دلم میخواهد به او بگویم ما نسل بدبختی بودیم. نسلی که برای خودش زندگی نکرد. اما نمیتوانم. نمیتوانم. نمی بیست و هشته مرداده هزار و هنیف. هنیف من. تولدت مبارک. هنیف کیست؟ این اسم ایدولوژیک دنبالهی نسلی است که همه چیز را سراسر پاک و آرمانی میخواست. نسلی استورهی استور پرداز. نسلی که بیشتر از آنکه جاده‌های زمینی را بشناسد، راه های آسمانی را می شنخت. آن روزها فکر می کردم نام حنیف علاوه بر این که چیزی از وجود ابراهیم پیامبر را به نمایش می‌گذارد، به نوعی به ابراهیم روحامی هم اشاره دارد می‌خواستم ابراهیم روحامی را با این نام گذاری تقدیس کنم آیا برستی اسماعیل با مسماتر نبود؟ من در کدام عالم زندگی می کردم؟ چرا واقعیت ها را نمی دیدم؟ چه چیزی واقعیت بود؟ آیا آن آرمان ها و ارزشها واقعیت نسل من نبود؟ چرا روز بیست و هشت مرداد برای من روز معناداری بود؟ مگر نه اینکه کسی یا کسان دیگری می تعبیر و تعویل دیگری از این روز داشته باشند؟ آیا ما نسل ساده بودیم که واقعیت های پیچیده ی تاریخ فرهنگ بحثی را درک نمیکردیم؟ راستی: چرا از زمیر ما استفاده می کنم؟ این ما کیست؟ آیا منظور از ما خودم و ابراهیم روهامی است؟ چرا بعد از سالها دشمنی خودم را با او در یک جپه در یک موقعیت می بینم؟ آیا به رغم اختلاف و تفاوت ما نسل واحدی بودیم؟ مسییک است همه چیز مسییک است سی کهمرداد مرداد داد ساعت باید حدود یک و نیم بعد از نیمه شب باشد پژوی یشمی اهدایی حاج صادق کنار پیکان توسی رنگم پارک شده است درست به اندازه که تفاوت این دو ماشین من و هاج صادق با هم متفاوتیم من درجا زده در گذشته ماندم و حاج صادق با زمان پیش رفته است. آیا وقت آن نرسیده که در یک مسابقه ماراتون او را پشت سر بگذارم. ماشین را روشن می کنم. چشمی دزدگیر پژو و دمادم روشن و خاموش می شود. احساس مردی را دارم که زنی روز به او چشمک می زند. به یاد لحظه ای می که حاج صادق سویچ را به اسمایل داد. سویچ مثل حلقه یه دار جلوی چشم شده بود. احساس می کردم آن سویچ تنابه دار من است. سوئیچ در فاصله خطابه یه تحنیت حاج صادق به اسماعیل لحظاتی در فضا تکان خورد. لحظاتی که برای من سالها طول کشید. آنقدر که همه سالهای عمرم را مرور کردم. در همه این سالها زیر دست و پای حاج صادق بودم حتی آن زمانی که توی باغچه بزرگ خانمو قایم باشک بازی می کردیم و من قبل از آن که موفق به گفتن سک سوک بشم در چنگال های صادق اسیر می شدم آیا حاج صادق با اهدای آن ماشین آخرین سنگر را هم فتح کرده است مگر نه اینکه که در خلصه سکر و شاید شد که اهدای ماشین صفر دفترچه پسندازه دویست هزار تومانی مرا که به عنوان هدیه تولد به او داده بودم ندیده بود نمیدانم کی وارد اتوبان قم شدم باید خودم را از زیر دست و پای حاج صادق بیرون بکشم باید او را پشت سر بگذارم باید از او بگذرم باید با تمام توان از دامنه اقتدار او بگریزم باید بروم تا پایان زمین تا انتهای زمان باید از او دور شوم دور آنقدر دور که نتواند مرا ببیند و من نتوانم او را ببینم ده دهم و هشتاد باید حاج رسول را ببینم به نماز ایستاده است نماز در میان اسکلت هایی که هر کدام برای من و او چهره یو ای داشتند. این یکی اکبر ساجدی است تسبیحش را میبینی حاجی. قرآنش هم سالم است. یادت هست تسبیحش را دوری صد سلوات به بچه ها میداد. این یکی حمید است لبخندش را میبینی حاجی. این پسر خود خود زندگی بود. این یکی حسوه این مشی است انگش درهایش را میبینی، عشق انگش داشت مرد گنده حاج رسول اشک می و من میروم به گذشته به عملیات کربلای بلای پنج، به آن قتلگاه حاج رسول بعد از جنگ گفته بود همشون رو پیدا می قدم به قدم قتلگاه شلم چرا کافیده بود پای راستش را داده بود تا گمشده هایش را پیدا کند. پیدا کرده بود. می گفت فقط دوازده نفر. حاج ابراهیم فقط دوازده نفر باقی مانده. گفته بود می مانم حاجی می مانم تا آن دوازده نفر را هم پیدا کنم. ساعت دوازده از میراج و شهده شلم چه زده بودم بیرون. حاجی چهار روز قیبت داشت. چیزی که این چند سال سابقه نداشت. همه نگران بودند. باید میآمدم دسفول. باید خبر سلامتیش را برای بچه می‌بردم. می بردم. گردانه بیست و هفته ابوزر. در جاده نیست. دو طرف جاده سیم خاردار کشیدند و هر چند متر همان علامت همیشه گیه میدان مین را نصب کردند. پای بر پدال گاز می فشارم. در آن سر جاده، در آن روبه روحی چیز نیست. جز برق سرابی که گویی حاصل تبخیر زمین است. ناگهان فکر می کنم چرا راه های زمینی نمی توانند به آسمان ختم شوند. راستی شازد کوچولو، شست کوچولوی گل، نه شازده کوچولوی اگزوپری چطور از آسمان به زمین و از زمین به آسمان رفت گل چقدر این کتاب را دوست داشت لعنت به گل لعنت به او که هر هرجا میروم نمیتوانم از شرش خلاص بشوم شازده کوچولو را نیش مار به آسمان به سیارش برگرداند چه اروج عجیب سیم‌های خاردار با سرعت صد و با من و پیکان توسی رنگم حرکت میکنند. پرنده از رو به می آید. شاید یک پرستو باشد. سیم خاردار پشت سرم ماندند. و من خورشیدی چون گل از دل زمین می گفت. گفند. او مرده، چرا اندوگینم، چرا گریه می کند؟ آیا مرگ او را به من نزدیک کرده است، مرگ پیوندهنده است، به همان اندازه که زندگی جدا کننده است، در سرزمین مرگ، در ساحت مرگ، در سپهر مرگ، در وادی مرگ، همه با هم برابریم، آیا ترس از مرگ مرا به او نزدیک کرده است؟ آیا اقتدار مرگ است که همه را به هم نزدیک می کند؟ این سرنوشت محتوم چرا در زندگی گم و گور است؟ چرا آن را نمی بینیم؟ چرا به آن نمی این قطعی ترین قطعیات را چونان محتمل و دور از دسترس می بینیم که به کل آن را فراموش می کنیم؟ اگر نوزده بیست سال پیش در آن ساعتی که درد می کشیدم می دانستم روحامی در آینده اینقدر نزدیک با مرگ اینچنین شاید دلخانه می میرد. آیا این سالها با کینه او زندگی می کردم؟ او مرده است و همراه او بخشی از وجود من نیز مرده است. وقتی روحامی جوان خبر مرگ او را داد مثل آدمی که آشنایی را بعد از مدتها میبیند و قدرت و توانه به جا آوردنش را ندارد ذهنم به جستجوی او رفت تصاویر و لحظات در کنار هم قرار میگرفتند انگار پازل وجود او را میساختم تا تصویر کاملی از او داشته باشد این ساخت و ساز در سکوت محض انجام گرفت روحامی جوان متددن زنگ زد این بار از نحوه مرگ او گفت و اینکه او یقین دارد اما ابراهیمش از مدتی قبل تغییر کرده بود و آن مرگ عجیب پایان دلخواه زندگیش بود تردید، سوال و حیرانی ذهن و زبان روحامی جوان را در بر گرفته بود همه چیز برایش سوال برانگیز از پدرش و هدیه تولد اسماعیل گفت از اما ابراهیم و نگاه ایرانش در جشن و از پدرش و انزوای چند روزش پسر جوان میخواست به ورای صورتک ها و روابط ظاهری برود و حقیقت را کشف کند نمیدانست حقیقت زیر صورتک مرگ پنهان شده و کشف ناشده است. بازی روزگار او را هم از روی نیمکت ذخیره به میدان فراخوانده بود و او قواید بازی را نمیدانست. چه کسی قواید بازی را میداند؟ اصلا مگر این بازی قاید من است؟ مگر در حضور مرگ می توان بازی سازمان یافته ای ایراد کرد. 25 مهر 80 جلوی در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران قدم میزنم. سبکی پاکت نامه را در دست راستم احساس می کنم. تمام ذهنم یک پارچه با آن مشغول است. چرا پدرم حرفایش را تلفنی به او نگفته چرا برای او نامه فرستاده؟ احساس خوبی ندارم. حس می کنم آن شوم دیگری اتفاق می افتد. خانوم دکتر محمدجانی به شتاب از در کتابخانه بیرون میآید. بدنش به سمت راست لنگر بر می دارد. حتما باز هم کیفش پر از کتاب است. از دور برگم دستگان می دهد. تا به هم برسیم سلام و احفل پرسی کرده ایم. بلند و از دور به اصرار کیفش را می گیرم و همان موقع پاکت را به او می دهم. پدر داده. در گرفتن پاکت تعمل می کند. به نظرم زیر چشمی اطراف را می پایید تا به در غربی دانشگاه برسیم از جلوه کتابخانه مرکزی در اوایل ترم سخن میگوید وقتی وارد خیابان میشویم پاکت را جلو رویش می گیرد و تکان می دهد نمی بازش کنیم؟ راستش بعد جوری کنج یک کمی عجیبه اینطور نیست؟ چی عجیبه؟ اینکه اثر نامه خیلی وقتی به پایان رسیده پدرم متعلق به اصر و نسل نامه است پاکت را باز می کند و کاغذی به اندازه یک فیش از درون پاکت بیرون میآورد به دنبال چیزی درون پاکت را جستجو می کند پاکت خالی است فیش را میخواند نمیدانم روی فیش چی نوشته شده اما می بینم که نوشته کوتاه است فیش را به سویم دراز می کند. در گرفتن آن تعلل می کنم. بخونش فیش را میگیرم و میخوانم سلام تقاضایم را پس میگیرم مرا ببخشید به نظرم چشم های خانوم میخندند می من گیجم